سلامانه علیکم ولا و به واقع که بر اساس اخبار رسیده ما نمیدانیم مقام معظم رهبری چرا حتی یک ماه اضای عمومی اعلام نمی در سطح کره زمین بله اون مؤمنی که گوشه مجلس نشسته حتماً الان داره از خودش میپرسه که حاجی داره از چی حرف میزنه مگر مگه چه اضایی که باید اعلام بشه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 مگه این مملکت همینجوری وله که کفار بیان توش لفظ وقتی که حضرت آیت الله لاری جانی در صحرای قوه قضایی ورد شد و دید شیخ کافر پست فروش رفزنجانی و آنه دیگر شیخ قطاب فروش یزدی آنه رفزنجانی با ختمی نشسته رهبر فروش گفته باید بعد از مقام معظم رهبری باید رهبری به صورت شرائی بشه خب مگه با این حرفا دیگه مومد میتونه پر بیان پس حضرت آیت الله آلانی جانی خون جلوی چشمهاشو گرفت شمشی رو کشید بیرون اما ما رو پرت کرد اون طرف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 <تصفيق> برادران مومنی که گوشه مجلس نشسته رو بگیرد و خیلی داره به خودش پشار بیاره کاری دست خودش نده تفدل تفدل بله میگفتم حضرت آیت الله لاری شمشیرش رو توی غلبه شیخ پسته فروش فرو کرد. اما این تست فروش ها مگه تمام میشن این یکی میره اون یکی میاد اون یکی میره این یکی میاد دیگه نوها را کتاه کنم یه وقت تلفات جانی ندیم اینجا خیلی عزیزان حساسی شدن چند تا دعا میکنم ای مقام معدم رهبری.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 متعالی بفرما آه گلن به همه این پسته فروش ها و اون قطاب فروش ها همه بفرمان ]هایر! بس دیگه چقدر دعا بکنیم دیگه و سلام علیکم و درود بر ما که این هنجره طلاعی من همیشه در بین پیروان چندتا تا کشته و زخمی اگر منوره است. روح منی